بسم الله الرحمن الرحیم بنام خورابند بخشنبی مهربان الیسلام مین الیسلام مین غلیبت رومیان مغلوب شدند بیر أبنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وإن شكاف بسرطنين نسيك رصاد أما بعد المغلوبية بسودية خلابات وحانك سيد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ در چند سال همه کارها از آن خدا، چکار خب و چپار و در روز مؤمنان خوشحال خواهند شد. نصرالله یوسف میشاع و او العزيز با سبب یاری پروردگار خداوند هر کس را بخواهد نفرت میدهد و او عزیز و است. وعد الله لا يطلب الله وعده ولكن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ این چیزیست که خداو وعد کرده وعده یه هرگز تخلیف نمی فتیده ولی اثر مفتام نمی زانه یعلمون آنها تنها ظاهری از زندگی دنیارا را دانند بس آخرت اطاو یا نکار بی خبران اولم یتفکروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرٌ النَّاسِ بِلِقَاءِ غَبِّهِمْ لَكَافِرُ آیا آنها در دل خود نهاندی که خداوند آسمان و زمین و آن میان آن دوست جز به حق و براوی زمان معجن نیا فریدن ولی پسیاری از مردم به قاضی را منکرند أو لم يسيه في الأرض فأنظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوتهم وأثاروا الأرض وعمروها أسرى مما عمروها وعمروها آیا در زمین سر نکردند و ببینند آقابت کسانی که قبل از آنها بودند چگونه شد؟ آنها نیروی بیش از اینان داشتند و زمین را دگرگون ساختند و بیش از آنچه اینان آباد کردند امران نمودند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان آمدند خداوند هرگز به آنها ستم نکرد آنها به خودشان ستم می <تصفح> سپس تر انجام کسانی که اعمال بد مستقب شدند به جایی رسید که آجات خدا را تکذیب کردند و آن را به استهداغ گرفتند الله یبدع خلقتم ثم, يعيده ثم إليه خداوند آفرینش را آغاز می کند سپس آن را تجدید می نمو سپس به سوی او باز می کند. و یومت قومت ساعت و المجرمون آن روز که قیامت بر فامی مجرمان در نومیدی و غم و اندو سرو می روند. و لم شركائهم ففعاء وكانوا بشركائهم كافرين بطراد انحاء شكيان اذ معبودون شن نخهد بود و نسبت به مابود فوق انهار و شریک يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون آن روز که قیامت برپا می‌گردد مردم از هم جدا می‌شوند. شود فا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتِ يُحْبَرُونَ اما آنها که ایمان آبردند و عمل صالح انجام دادند بر باقی از بهش شاد و مسرور خواهند بود وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُصْدَرُونَ وَأَمَّا آنها که به آیات ما و لقاوی آخرت کافر شدن بر عذاب الاسی اهدار میشه پرد فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُنْسُونَ وَحِينَ پس خدا بند را در شام دهان و صاف گاهان، بپاکی یاستیم و له الحمد بی السماوات والأرض و عشیم و حین تبهیون با آن عوض، هم در آفمان خواست، و هم در زمین، و هم در آخر روز، و در انکامه که وقت چاشت را می کترانیم خرج الح من المیت وخرج المت من الح وح الربعد موتهولجونزنده را از مرده بیرون مییابد و مرده را از زنده بیرون مییابد و زمین را بعد از مردن آن زنده میگرداند و شما این چنین از قبر خیش بر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُغَابِّثُمْ مَأْذَآءَكُمْ بَشَرُونَ تَنْتَشِرُونَ أذن <تصفيق> شان هاي او اینا کشمار از خال آخریه. تفس انسان هایی شدید أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفترون بعض نشانها يؤوئين كهم تروني الجنس خود شما براوي شما آفري فاو در كنار عنها أورا و در میانتان نشان و رحمت خرائط در این نشان هایی برای کروهی که تفکر می و من آیاتی خلق و و اختلاف ألفنت و الوان این آجات او آفرینش آسمان ها <تصفيق> و بالتفاوت الثقلvarphiarang هاجي شما بكمان در اين نشانهاي براوز يا آمدن و من ايات هي ملائكه في الليل والنهار من فضله إن في ذلك لايات لقوم يسمعون از نشانه های او خواب شما در شب و روز هستند، تلاش و کوششتان برای بهدگیری از فصل پربارکار و با تأمین معاش، در این امور نشانه برای آنها که گوش شنواد دارند، ومن آياته يريكم البغف خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بس آجات أوئينا كباقو رعد را بشما مجهد که هم موجه سرسر و هم امید و از آسمان آب ترون می که زمین را بعد از مردن با وسیله آن زنده می کند بی در این نشانه‌هایی برای جمعیتی که عقل خود را به کار کند و من ثم اذا دعاکم دعوة من از آجات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاس سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فرا میخواند ناگهان همه خارج می شویم و در صحنۀ محشر حضور می یفتیم وَلَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ خَالِقُونَ بس اللهِ تمام کسانی که در آسمان ها و همگی در برابر او خاصی و مطیع وهو الذي والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الاعلی فی السماواتوالرززماو ذاتی است که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را باز میگرداند و این کار برای او آسانتر می با باشد و برای او توصیف برتر در آسمان و زنین است و شکاف شکفتناپذیر و حکید وَاذَكَرَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَٰكُم فأنتم فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وقافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون خداوند مثالی از خودتان برای شما تدن آیا این ممنوعه هایتان هرگز شریک شما در روزهایی که به شما دادعیم می باشند آنچنان که هر دو مسابی باشید و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنها دین داشته باشید آنگونه که در مورد شرکای آزاد بین دارید این چونین آیات خود را برای کسانی که تعقل می کنند شرک می دهیم؟ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ظالمان از هوا و عوازهای خود بدون علم و آگاهی پیروی می کنند ب میتواند آنها را که خدا گمراه کرده است هداو جذب نمی‌کند و برای آنها هیچ چیارو چیاریا نخواهد لا فَأَتْمَمْ وَجْهَكَ لِلْذِّنِّ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي لَا تَبْدِيلَ اللَّهِ ذَلِكَ الدين الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ روی خود را متوجه اویین خالص سفر بارکاو کن این فطرت است که خداوند انسان ها را بر آن آفری دار دگرگونی در آفرینش نشه خدا نیست اینا دین او این با آویین مستم و اصطبار برای اکثر مردم نمی دانند منیبین ایلیه و اتقوه و اقیمو صلات و لا تکونو من المشرکین این باید در حال باشد که شما با کشت سوی او کنید و او بپرهیزید و نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید من الذين که که دین خود را فراگنده ساختند با دفتها و گروه ها تقسیم شدان با هر گروهی بانچنا سآلها خوش خوانا هاو. وَإِذَا مَتْسَنَّاسَهُ الْغُنْدَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ هنگامی که ضرر و ناراحتی به مردم برسد پر خود را میخوانند و به سوی او باز اما هنگامی که رحمتی از خودش و آنها بچشاند درویش از آنان نسبت به بارکارشان مشرک می شوند لیذکرو فتمتعو بکار نعمت‌هاوی را که ما با آنها داده کفران کفن کنم. وس نعمت‌هاوی یسوع که در تنیا هر چی می‌توانی اما خواهی ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان به قاهی استام. امّا آیا ما دلیل محکمی برای آنها نازل کردیم که از شک آنها سخن می و آن را موجه می شمارد؟ و ایزا ادخنن بها و تصبهم سیئتون بما قدمت ایدیهم ایزا هم به هنگامی که رحمتی با مردم بسشانین خوشحال می شوند، به هرگار رنج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد نوکهانم معیومت می شبند اولم يروا ان الله الرزق لمن یشاؤ آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد دسترده یا سنگ می در این نشانه برای گروهی که ایمان بیا برند فآتید القربه حقه هم و المسکین و نستبین ذالک خیر للذین یهیدون وجه الله و اولائی چون چونین است حق نزدیکان و مسکینان و ابن السبیل را ادا کن این برای آنها که رضای خدا را می طلبند بهتر است و چونین کسانی رستگاران و من و ما آتیتم من زکات سریدون و الارضای فاولائی را به عنوان سود می پردازید، تا در اموال مردم سیزونی یا برد خدا سیزونی نخواهد یا و آنچه را به عنوان زکات می و تنها رضای خدا را می کسانی که چونین می کنند راو جيت هاو داو چه مزاحا فان الله الذي خلق ثم وزقكم ثم هديتكم ثم يحييكم فهل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء خداوند همان ذاتی که شما را آفرید سفت روزی داد بعد می میراند زنده می کند آیا از شریکانی که برای خدا صافت اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند تا او و است از, از آنچه چه شریف برای او قرار می انگ ن نیودی با در پشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام دادهاند آشکار شد خدا میخواهد نتیجه بعد از اعمال آنها را به آنها بچشاند نند باز قل سيروا في الارض وانظروا كيف كان عاقبة الذين قبل كن اتر مشركين بگوذر زمین سیر کنید و بنگرید آخره کسانی که قبل از شما بودند چگونه بود بیشتر آنها مشرک بودند راسه وجاهت للذين القنم من قبل أن يوم لا مرد خود را به آیین حق مستقیم و پایدار پیش از آن که روزی فرار است که هیچ کس قدرت ندارد آن را از خدا باز کند در درون مردم بکر ها تقسیم می شوند هر کس کافر شود توش بر دیان خود و ان که عمل صالح انجام دهند پاداش الهی را به سود خودشان آماده میسازند لی یذین این برای آن است که خدا کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده ان از قبلش پاداش دهد بیگمان او کافران را دوست ندارد و من آیات این نورتیل ریاح و از خدا این که بادهارا بهف بشاورت کی می فرستا تا شمارا؟ از رحمتش بچشاند و کشتی ها فرمانش حرکت کنند و از فضل او به را گیرید شاید شاید گذاری کنید که روزن و كان حقا علينا نصر پیش از صوفیان برانی را به سوی قومشان درتازد پس ایشان به قوم خیش هایی آوردند و در این حال از کسانی که مرتکب جرم شدند انتقام گرفتیم و بر برما که به مدد مسلمانان برسی الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيرثقه في السماء كيف يشاء فيرثقه في السماء كيف يشاء ويجعله في سفن الورق يخرج من خلاله فإذا خداوند همان ذاتی که بادها را می پرستد. تا ابرهایی را به حرکت درآورند سپس آن ها را در پهنه آسمان آنگونه که بخواهد می گسرادد و متراکم میسازد در این هنگام دانه‌های باران را می بینی که از لابلاهای آن خارج می شوند هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند خوشحال می شود و این کارو من قبل, ان ينزل من قبل هر چند که بر آنان نازل شود معیوز بودند فانظر إلى آتار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بآصال رحمة الله في بنگر كي شكونا الزمين دا زنده کننده مرتگان در پیامت هم با و او به با همچی کبان ها و من بعده با اگر ما بادی بفرستیم و با بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پجمرد ببینند که کفران پیش می گیدند فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُعَاءَ نمی سبانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی و را به گوش کران هنگامی که روم می کردانند وما به عن این تسمیع ایلا من یؤمن با آیات نا و نیز نمی توانی نابینا از اکبراکیشان هدایت کنی. سطحها سخنات را با گوش کسانی می رسانی که ایمان و آدالت ما آورند و برابر حق فسیمان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 خدا همان داتید که شما را آخری در حاله سعید بودید سپس بعد از این ضعف و ناسبانی قوت بخشید بعد و بعد بعد از قوت ضعف و پیری قرار داد او هرچی بخواهد می آخری و عوض آغن و خاطر و یوم تقوم الساعت و المجرمون ما لبیتو غیر ساعت کذالک کانون فکرون بر روز که قیامت بر فاشبد گناه کاران سوگان زیاد میکنند که جس ساعتی دران نفردند اینچونی آنها از برسفقیقت محروم میشنند وقال الَّذِينَ اوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کسانی که علم و ایمان به آنها داده شده میگو کن شما به فرمان خدا تا روز قیامت درنگ کردید و روز را تأثیر ولی شما نمی دونستی. فَلَوْ مَعَ ذِلَّةٍ فَوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. آموز، آق سود ندارد، و ثروتی آنان قدرت کن وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاتِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَدَتْ وَلَئِنْ جِسَّهُ بِآیَتٍ لَيَكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَوْوْا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ما در در این قرآن ات هر اگر آقایی برای آنها بیاوری کافران نیکویان شما اهل باطل تلاشی. کَذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى خداوند بر دل کسانی که آگاهی ندارند مؤمنه هستند. صَبِرْ لِنَوَادِ الله وا اکنون که چونی است صبر پیشه کن که بعد خدا تقت و هرگز کسانی که ایمان ندارند نباید پر را خشگی